ما درد و جهان غیر خدایار نداریم جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم در ویش و فقیریم در این گوشه دانیا با نیک و بد خلق جهان کار نداریم ما مست سبوهیم زمی خانه توحید حاجت به می و باده خمار نداریم با جامعه ست پاره و با خرقه برخاک نشینی مؤازن آر نداریم خاک نشینی مؤازن آر نداریم ما یار نداریم دل دار نداریم جز خالق جبار مددکار نداریم ما یار نداریم دل دار نداریم جز خالق جبار مددکار مدت گریار وفادار نداریم عجب مایار ما یار به جز خالق جبار نداریم ما تمزدگانیم در این گوشه دنیا چون زاغ گذر بر سر مردار نداریم بنگر تو دل خسته شمسل حق تبریز ما جز هوس دیده دیدار نداریم ما پاک دلانیم و به کس کینه با گردش ایام دگر کار نداریم با گردش ایام دیگر کار نداری ما یار نداریم دلدار نداریم جز خالق جبار مدد کار نداریم ما یار نداریم دلدار نداریم جز خالق جبار مدد کار نداریم